حکایت، گدایی هول را حکایت کنند که نعمتی وافر اندوخته بود. یکی از پادشاهان گفتش: همینماگند که مال بیکران داری و ما را مهمی هست. اگر به برخی از آن دستگیری کنی چون ارتفاع رصد وفا کرده شود و شکر گفته گفت ی در روی زمین لایق قدر بزرگوار پادشاه نباشد دست همت به مال چون من گدایی آلوده کردن که جو جو فرا هما وردن. گفت غم نیست که به کافران میدهم. الخبیساتو للخبیسین گراب چاه نصرانی است جهود مرده میشوگی. چه است؟ قالو اجینل کرسه لیسه به تاهرند قلنا نسد و بهی شقوق المبرز شنیدم که سر از فرمان ملک باز زد و خجتاوردن گرفت و شوخ چشمین کردن بفرمود تا مضمون خطاب از او به زجر و توبیخ مخلص کردند به لطافت چو بر نیاید کار سر به بی حرمتی کشد ناچار هر که بر نبخشاید گر نبخشد کسی بر او شاید